از تو جا مونده یادگاری میدونستم نمیتونی تنها بذاری میدونستم دوباره برمیگردی تو نمیدونی با من و قلبم چکردی محیط این خونه برام تکراری میشه بدون تو سردرگ و همیشه بی تو دنیام سردوست و تو کوره وقتی راه Olibe mule, wani garibam birin همه دنیا رو با تو دوست دارم عزیزم اگه با من باشی همه دنیام رو پت میدیزم قلبم تا غب نداره همه دنیا رو با تو دوست دارم عزیزم, عزیزم. اگه با من باشی همه دنیا مخطمی دیزم قلبم تا قد نداره بدون تو بمودم